بسم الله الرحمن الرحیم کتاب مختصر ابی شجاع رو میخواستیم در سطح در واقع ترجمه و کمی تعلیق توضیح بدیم برای طلبهی که میخواد بمتن رو مروب کنه خب مختصر ابی شجاع اسمش هست بمتن الغایتی و تقریب یا همون غایت الاختصار <تصفح> غایت تقریب هم البته گفته میشه متن ابی شجا هم گفته میشه خب این قسمت از کار زیاد مهم نیست نویسنده ایشون امام علامه احمد ابن حسینه اسفحانی شافعی رحمه الله تعالی هست که در سال 433 هجری به دنیا آمد و در سال 593 هجری فوت کرد ایشون از معمرین است اونایی که عمر طولانی داشتند طبقا چکی میبین 160 سال عمر داشته است. خلاصه اگر مقدمه ای بشه ایشون قاضی بوده علامه بوده امامی آبد فقیه صالح و انسانی نیکوکار و متقی و معمر بوده شهاب الدین احمد ابن حسن ابن احمد شافعی احمد حسین العبادانی پدر بزرگ مال آبادان بوده الاسفهانی پدرش هم معتولد اصفهان بوده ما ترک گفتیم در سال 433 در بصره به دنیا اومده و بیش از 40 سال در مذهب امام شافعی رحمت الله علیشون تدریس داشتند میگه پدرم ابو شجا میگه که پدرم قبل از من گفتم اصفهان ولی آبادان پدرم میگه مطالد آبادان بوده و پدر بزرگ اعلایم اصفهانی بوده میگویند سد و سال عمر داشته الله تعالی اعلم شخصی بسیار مشهور بوده و عالم و باوره تلاوت کسرت و تلاوه بوده و قاضی بوده ایشو در قضاوتش هم از ملامت هیچ ملامتگری نترسیده و عادل بوده در آخر عمر میگند زهد پیش کرد و در مدینه منور زندگی کرد و همونجا فوت کرد و نزدیکی های حجره نبویه علیه افضل و والسلام و سلام شد آثار علمی ایشون ایشون کتاب اقناع آز القزات ابل حسن ماوردی رو شرح داده و همین الاختصار رو نوشته که غایتو تقریب و متن عبی شجابش میگند خاطریم که واقعا از جموجورترین و مختصر ترین است که در فقه امام شافعی نوشته شده و برای حفظ بسیار مفید است برای طلاب شروع زیادی داره ابو بقر ابن محمده دمشقی شرحی برشون داره بر این متن مختصر داره بنامه کفایت الاخیار احمد اخصاسی شرحی برش داره نام شرح مختصر ایشو جا محمد ابن قاسم غزی شرحی دانه برام فتح القریب المجيب با حاشیه های زیادی یه شرحی به نام برش هست تشنیف الاسماء به حل الفاظ ابی شجاع هم برش هست شرح دیگر به نام ان نهایا فی شرح الغایه برش هست محمد محمد خطیب شربینی هم که ایشون مشهور هست شرحی برش داره به نام الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع و شرح های زیاد دیگه خیلی ها این متن کوچیکو تبدیل به نظم کردند احمد ابشیهی تبدیل به نظم کرده و افراد زیاد دیگه تصحیح شده این کتاب بارها توسطه ابوبکر بن قاضی اونجا اسمشو گذاشته عمدت النظار في تصحیح قایت ال... الاختصار کار بسیار زیبایی رو مصطفى دی بلبغا انجام داده ادله این متن جمع کرده به نام التوهیب في ادله متن الغایت والتقریب و به زبانهای مختلف ترجمه شده فرانسوی، آلمانی و فارسی خودمون و زبانهای دیگری در, در هر صورت ما تنس بسيار مهم در مذهبه امام ببزرگوار امام شافعي رحمه الله مقدمه خود مؤلف داران يشون ميگه بعد از الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته اجمعين ميگه قضي ابو فجام احمد ابن حسن ابن احمد اسفحاني رحمه الله ميگه فعزيز بمشتان از من طلب کردم که مختصری رو در فقه مذهب ایمان شافعی رحمت الله علیه بنویسم که خیلی مختصر باشه مبتدی بتونه اونو حفظ بکنه تقسیم بندی و جموجور باشه میگه من این خاصه رو اجابت کردم به خاطر ثواب و پاداش و این مختصر رو نوشتن خب با این مقدمه کوچک انشالله در جلسه بعدی کتاب و طهارت رو خواهیم خوند تا طلال کرام بتونند استفاده ها ببرند